در این زندان برای خود هوای دیگری دارم جهان گوبی صفاشو من صفای دیگری دارم شنیدم ماجرای هر کسی نازم به عشق خود کشیرین ترز هر کس ماجرای دیگری دارم چرا یا چون نباید گفت گویم هر چه باد آباد که من در کارها چون و چرای دیگری دارم دروغ از, دروغ از اون خبرهایی که در گوش تو خاندستند حقیقت را خبر از مقتدای دیگری دارم خدای سادلوهان را نماز و روزه بخری ولیکن من برای خود خدای دیگری دارم ریاو و رشوه نفری بد مرا آری خدای زیرک بی اعتنای دیگری دارم بسی دیدم نا خوی مسکین رب بناگویان من اما با احورایم دعای دیگری دارم ز قانون عرب درمان مجو دریاب اشاراتم نجات قوم خود را من شفای دیگری دارم برد تا ساحل مقصودت از این سه گین قرقا که ایران کشتیت را ناخدای دیگری دارم به نام ایران زمین با درود پیشگاه بینندگان گرانقدر و باشندگان گرامی و همچنین موبد بزرگار مهندس کامران جمشیدی چهارمین نشست همگانی از سوی جنبش رونسانس ایرانی رو در خدمت دوستان هستیم و جستایی رو که موبد بزرگوار امشب میخوان در مورد اون سخنرانی بکنن چنین هست زردخشت هست من دیگه بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم گویانه رو تقدیم موبد بزرگوار میکنم موبد بزرگوار گویانه پیشگاه شما بفرمید خواهش میکنم ران بر شما و همه کسانی که در این گاه اینجا گرد آمدید تا با هم همراه باشیم مانند همیشه آغاز میکنم با نام و یاد اهورامزدا خداوند جهان اخرط و با درود بر روان و فرابهر اشوزرتشت اسپانتمان و همه‌ی نیکان و پارسان و گیتی از کیومرس تا به سی و, و همه شما گرامی هم. سپاس از اینکه که به روی منو فراخوندید فرا خوندید تا امشب در کنار شما باشم. از ما خواستید که بگویم در چه موردی می‌خواهم سخن بگویم و من گفتم چنین گفت زرتشت آیا من آن توانایی رو دارم که بتوانم به شما بگویم که زرتشت چه گفت اشو زرتشت آنچه که میگویم به هر روی همواره گفتم که هر آنچه که من میگویم یا هر کسی می میگوید دریافت و برداشت و فهم و بینش همان کس است خوب یا بدش را درست یا نادرستش را شنوندگان و راستی ها بسنجند در تشت عشو زرتشت پاک که ما او را عشو زرتشت می و امیدوارم که حال همه شما که اینجا هستید که بیگمان میدانید در چه موردی سخن است، در مورد چه کسی سخن است و میدانید که آنچه که ما به نام گفته های اشوزرتش، سخنان سخانه میشناسیم و مینامیم در مجموعه کوچکی به نام گاهان یا گاته یا گاته یا گاته ها یا آنجور که آنگونه که خودش رو مینامید منطره ها یا سخنان اندیشه برانگیز ایشان به مونده و خب هیچ راه دیگری نیست جز اینکه به گاته ها و البته آنچه که در این فرهنگ کهن و دیرینه و بسیار پربار به جامانده خود خود سرچشمه گرفته و ریشه گرفته از این سخنان و این آموزشها هستش و در جا به جای این فرهنگ نهفته است. که از اونها هم میشه یاری گرفت برای فهم و درک سخنان اجازه بدید پس با خواندن یکی دو بند کوتاه از گاته ها به زبان خود عشوزردتوش و بعد اون بنده های دو سه، سه چهار تا بند مهم گاته ها رو به فارسی امروزه میگم تا از اونا بتونم سخن رو آغاز بکنم خب بیگمان مهمترین نخستین و آخرین چیزی که حالا اسمشو بذاریم نیایش بذاریم منترا بذاریم گفته بذاریم سخن بذاریم سروده هست و به راستی همه چیز رو میگوید میدانیم که چیست؟ هشم و هو که میگوید عشم و هو هشتم و هشتمستی اوشتا هستی احمایی ید عشایی و هشتایی سپس خود گاته ها آغاز می شود با یک بنده میشه گفتش که آغازین که می شود گفت از افسوده های شاگردان ایشان هستش که با آغاز میشه با یانی منو یعنی وچو نبوید یانی منو یانی وچو یعنی شیعو تنم اشعونو زراتو فرا همشا سپنتا گاتا گروروین نمو وی گاتا که میگوید اندیشه و گفتار و کردارش رو زد اینجا یک واجهی رو به نام یان به کار میبرند یان یا یانش یانشیست این یانش رو حالا این من باید یک در واقع توضیح کوچکی بدم به هر روی وقتی که به این متون کهن می‌پردازیم و زبانی که برحال زبان گفتگوی امروز ما نیست چاره‌ای نداریم تا به اون دانشی که به هر روی امروز به نام زبانشناسی مونده زبان‌های کوهن بازگردیم و به اونا تکیه کنیم و آن آنچه که آن کسانی که این دانش رو دارند از اون بهره میبرند و این واجه ها رو به زبان روزی ما برمیگردند. در مورد یانش واژه‌ی گوناگونی به کار رفته شاید که از بتونیم بگیم بهتریناش الهام باشد که میگویند من خود واژه یان رو به کار میبرم به یانش رو در میان هم داریم حالا باز میان را همچ چگونه برداشت بکنه به هر روی این اندیشه های درونی خودش زارتش هست که به واسطه اون دریافتی که میکنه و اون رو به سخن و گفتار و سپس به کردار میکشونه. میگویند اینها هستند که راهنمای ما هستند و میخوان، که این گاتاها رو فرا بگیرند، پیش بگیرند، به پیش برند و گسترش بدهند. این خواست اجوزاتوش و همراهانش بوده. سپس در همون اولین نخستین بند گاته‌ها درست این اینکه همین امروز شما اگر در پجوبه‌ش و, آموزش و این چه در دوران دبستان که نود خب از دبیرستان به بعد و دانشگاه و به بالاتر به هر روی هر زمان که تزی حال بخوایم بگیم پروژه تزی می نویسید رست بر این هستش که در آغاز هدف رو میگویند در آغاز نتیجه رو میگویند و بعد به کنددوکپ پردازند و چگونه به اون نتیجه رسیدند در کات ها به درستی ما همین شیوه رو زیبایی می‌بینیم کاتا آغازش با, با آنچه که ما نیایش می‌گوییم هست نیایش گونه هست و همون بند آغازین که به پوستاییش می‌گوید احیا یاسا نمنکا زاستو، زستو رفزرخیا مینی اوش مزدا پا او رویم شاوی سپنگ خرتم مرنگ و یاخش نویشا گوشتشا اروانه می گوید که دستانم برافراشته است و نماز می گذارم. نماز نماز است ایرانی نمه، نمه که در چم یا معنا و معنای سادگی سر کمی فرود آوردن در خود بودن و به گونه بزرگ داشتن و عج گذاشتن. یا به ای سرم در نیایشت خمس دستهایم افراشته، و اینجا میگوید چی میخواهد از زبوران واسایش میخواهد میخواهد خرد داشته باشد وہ اندیشه نیک داشته باشد تا از راه اشا به این خواهیم پرداخت و از راه اشا یا راستی بخواهد کارهایی را انجام بدهد به کار کوشش و کنش کارهایی را انجام بدهد که پیامت و برآمد اون کارها خوشنودی روان آفرینش باشه یعنی هران چه که آفریده شده است هران چه هست هر و همه اینها بعد به این باز هم خواهیم پرداخت که اینها همه به هم در پیوند هستند و یگانه هند پس خواست زرتوش از همان آغاز رسیدن به اینجاست که از گفتار و کردار و کنش ها همه خوشنود بشن و همه در شرایط مطلوب و خوبی به سر ببرند اگه بخوایم اینجوری بگیم به زبان امروزی من چند بندش رو برگذیدم که به فارسی فقط براتون میگم بعد در مولش کمی گفته کنم میگوید پیش از هر چیز این ای مزده ها خب الان گفتم براتون بعد میگوید که بگیمان من روانم را با اندیشه نیک همساز میکنم و میدانم که هر کاری که برای مزدآهورا انجام گیرد چه پاداشی دارد تا تاب و توانایی دارم آیین راستی را به همه خواهم آورد. ای مزدآهورا تو را نیایش کرده و از تو میخواهم نیک اندشانو نیکوکاران و همه کسانی را که در راه راستی و سازندگی گام برمی دارند کام سازیم. به خوبی آگاهیم که نیایشی که از روی راستی و از جان و دل برایت هیچگاه بدون پاسخ نمی بارد. پس بیاییم از کسانی شویم که این زندگانی را تازه میکند ای خداوندان خرد و ای آورندگان خورسندی از راه راستی و درستی بیایید همه در آنجا که دانش درونیست یک پارچه همرای و همراه باشیم خوشبخت کسی که خوشبختی دیگران را فراهم سازد چنین است خاسته از دار من برای پیشرفت آین راستی خواستار نیروی تن و روان هستم اکنون برای شما که از راه دور و نزدیک برای یافتن راستی آمده ای سخن میگیرند. بشنوید و با اندیشه باز روشن در آنها بنگرید آنها را به یاد بسپرید و به کار ببندید تا آموزگار دروغ پرست با گزینش نادرست قیش دوباره شما را گمراه و زندگیتان را، ویران نسازد اکنون سخن میگویم درباره دو گوهر می یا دو شیوه اندیشیدن که شیخ دهنده دو راه زندگی می باشند. یکی پیشبرنده و سازنده و دیگری بازدارنده و بیرانگر این دو نه در اندیشه نه در آنگوزش ها نه در, در خرد نه در گذینش ها نه در گفتار ها نه در کردارها نه در باورها و نه در روان با یکدیگر سازگاری ندارند ایم دا هنگامی که در آغاز با اندیشه خیش برای ما تن و خرد و نیروی دریافت آفریدی یا همو یابش و به تن ما جان دمیدی و به ما توانایی گفتار و کردار دادی خواستی که ما باور خیش را به دلخواه برگزین پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بینگرید سپس هر مرد و زن از شما برای خیشتن از میان این دو راه یکی را برگزیند. این آین را پیش از روز بزرگ گزینش نیک دریابید، آگاه شوید و آگاهی دهید کمی بیاندیشید که در آن زمان که از دید من امروزه بر این باورم که بسیار کواهانتر از این تاریخی است که امروزه میگوییم شاید بیش از هزار سال پیش و هر روی بسیار قدیم یه همچی سخنانی از دل تاریخ بیاد بیرون بسیار باعزشه که همین امروز ما در پی اونیم و خیلی ها، خیلی ها هنوز از آنچه چه که در اون مایه و چکیده این گفتار هست نه تنها نمیدانند بلکه که به اندیشهشون هم نمیرسه چرا؟ برای که نخستین داو پیش شرط رسیدن به همچین دریافتی آزاد بودن اندیشه باشه این گام که ما در دوگم، حالا حد دو می میخواد باشه هر چیزی که اندیشه رو میبنده و جلو راه جستجو و کنکاش ما رو میگیره این میبنده ما رو حالا یک وارث دو از اساسا میگفتم برای رسیدن به آن که خرد می نامیم و خرد مایه سنجش و مایه گزینش درست ما در زندگی است و برای اینکه این, این خیلت پربارتر بشه و بهتر بتونه برگزینه باید دانشی بیشتر بگیره پس بنابراین نخستین شرطش آزادی است آزادی اندیشه و سپس آنکه همون راهی که ضرطش رفت یعنی ما اگر تمام گاته‌ها رو وقتی بخونیم و حالا اگر چیم یک یک که با ندانیم ولی اون راه رو اگر بفهمیم و اگر اون راه رو بریم به همون نتایج خواهیم رسید که ایشون رسیدم بدون تردید و تا چیزی که میتونه آدم دریابه از این که از پرسش آغاز میکنه و پرسش هنگامی است که آدم میگویند گمان می‌برزه یا شک میکنه شک به این که آن چیزی که به من میگویند که این درسته است اگر به گونه‌ای من بهش گمان میبرم یا بهش بد‌گمان میشم یا بهش شک می‌کنم بنابراین باید برم خودم پیدا کنم و اون خودش مالی نخست برای جستجوز و برای به بیشتر آمدن، برای جستجو کردن در آزادی، پس جستجو و آزادی با هم. و زمانی که این دوتا باشند یک نتیجه دیگریم و اون شادی است شادی که بسیار جرفتر از این داستان ها شادی که در گفته های اشت در گفته های عوستا و گاتا ها به نام همون اشنبه اومده که میگوید راستی را بگیرید، اشهار رو برید راه راستی راه اشهار رو اگه برید اوشدا میاد و اوشدا خورسندی است پس بنابراین به راه راستی باید رفت راستی چیز؟ همون است که یا به واژگان اگه باز امروزی بخوایم برگردیم یا میگم امروزی شاید برای بسیاری گفتن واجه های مانند واقعیت و حقیقت بیشتر برسان هم واقعیت هم حقیقت شاید بگیم هر دوی منی داره ولی من این دوتا رو اصلا جدا می کنم واقعیت رو در چارچوب زندگی روز بخوایم بخواییم بررسید کنیم و حقیقت وقتی بگیم به عنوان آنچه که آنگونه که همه چیز هست پشت همه آن چیزهایی که با این حس های در واقع آم آم بسیار مرز مرزین خودمون می تونیم بفهمیم هم حقیقت هم واقعیت یعنی باید به دنبال هر دوی اینها بود برای ای که اونها هستن که میتونن اون اوشتا رو بیارن اون شادی راستین رو بیارن و آن چیزی که برابر این دو میسته و ضد و وارون اینها هست خب میدونیم دیگه دروغ هست دروغ یا درگ و دروغ اما چیزی که امروز میگوییم و این دروغ درنده است. پاره کننده است پاره کننده راستی ها پاره کننده ها پاره کننده ها و این یگانگی نخستین اصل مهم جهان هست. همه چیز در این جهان به هم پیوسته است و این پیوند همه چی با هم همسرد نوش بودن همه چیز با هم رو زیر نام واجه نام یا واژه یگانگی می بگیم. پس بنابراین برای راستی رفتن به دنبال حقیقت بودن تا خود آن را دریافتن و فهمیدن و پذیرفتن وقتی که خودمون برسیم به واقعاتا و حقیقت ها دیگه کسی نمیتونه از ما بگیره. دیگه یک حتی میخواهم اینجا من یه خود بیشتر برم و بگویم که واژه باور رو هم ما باید به درستی بفهمیم باور خیلی مفهوم با گوناگونی میتونه داشته باشه اگه ولی این مفهومش رو بخوام بگم که اگه باور چیزی باشه که ما راستیش رو نمیدونیم ولی می باوریم حالا به هر دلیلی من به همچین باوری باور ندارم اینها راستی است اینها حقیقت است و حقیقت رو آدم وقتی که دنبالش بره میتونه بفهمه هم از راه دانش بیرون بویژه از راه دانش درون آن چیزی که ما در راه, راه و در زندگی عشوزرتوش خیلی ها شاید نمی بینند یا فقط اون سخنان بیرونی رو گوش می دن، یا می فهمند، امیدوارند اون سیر در واقع عرفانی روانی یا هر چیزش رو بذاریم که عشوزرتوش درونش رفت و از اون درون بود که به اون بینش رسید ما به اون بینش کار داریم این بینش رو میشه در موردش سخن گفت میشه با دانش به گونه ای اون رو گفت ولی بینش رو آدم بعد خودش درونش اونش برسه وقتی که درون خودتون به اون رسیدید و اون تصویر درست رو گرفتید دیگه اون از آن شما میشه کسی نمیتونه ازتون بگیره ما فقط میتونیم در موردش بگوییم هر کسی راه خودش رو بره ولی بدون که این راه پایان نتیجه خوبی دارد در مورد بتون کلی بعد اگه بخوام دیگه بیشتر بریم توی اینکه دین بهی یا فرهنگ کهن ایرانی چه میگوید خب به چیزهای نتایج زیادی میشه از اینها گرفت و از جمعه نگاهداری، سالم نگاهداری زیسکوم یا محیط زیست بگیر تا برابری انسانها که خود به خود به براوری حقوقی زن و مرد و آزادگی، گزینش، پیشرفت، نمو شدن فرشوکرتی یا نمو شدن همیشگی به روز بودن و در میان همه اینها به اندازه بود اندازه یکی از مفهوم بسیار ژرف هستش که باید بهش بازمون اندیشید. اندازه بودن یا همون اگه بگوییم تعادل، بگوییم تراز، بگوییم همسنگی، هم هر چیزی که تا زمانی تو اندازه های درست خودش باشه و در کنار هم اون وقت همساز هستن، اون وقت همتاز هستند، با هم پیش میرن هر چیزی که بخواد از اندازهای خودش به بیرون بزنه هم خودش رو در واقع خراب کرده، نابود کرده هم اون, اون توازن رو به هم می‌زنه بنابراین اندازه و پیمانه خیلی واجه هست پیمانه، پیمان، اندازه، همسنگی همراهی، همازوری که فرهنگ است که اگر برمبناش بفهمیم و درست عمل کنیم براستی میتونه هم تک, تک خود ما رو در اندازه های درونی خودمون برسونه به اون آرامش، برسونه به اون شادی درونی و هم یک جامعه رو به سوی یا به سوی اون آرامش افزاینده ببره تا در ادامش در پیش به خرداد، یا حربتات، امرتات یا یک همه شدن یک تکامل پیدا کردن چه روانی چه در حتی فیزیکی و رسمی و در جامعه دست پیدا کنیم که سرانجام را رو امرتات میگوییم امرتات حالا این هم به شکل های برداشت میکنن جاودانگی، بی مرگی, یا بی زمان شدن از زمان بیرون رفتن به گوناگونی های گناگونی و همین هم هست چه در چارچوب زندگی مادی و این جمعه نگشت کنیم چه در چارچوب زندگی معنوی یا چارچوب معنوی خب الان یک نیم ساعتی از سخن گفتیم، مف... میگمانم که نیم ساعت زمان گذاشته بودیم برای گفتگو و خب سخن که بسیار زیاده، ساعت ها میشه سخن گفت، ولی بسنده میکنم به اینجا و سخن رو باز میگذارم که خود شما که گرداننده هستید باقیش رو دونید و من در اینجا در خدمتم برای گفتگویی پیشتیم سپاس بسیار از شما موبد گرامی و بسیار سود بردیم قبل از اینکه حالا بخوام دوستان پرسش رو باز بکنن دوستانی که پرسشی دارن و میخوان پرسش از موبد داشته باشند، مهر کنن در قسمت چت عدد یک رو بزنن تا به نوبت از اونا خواهش بکنیم که پرسششون رو بپرسن از موبد گرامی در قسمت چت سمت راست مونیتورتون اون پایین عدد یک رو بزنید و وارد بکنید میتونید بپرسید حالا قبل از اینکه وارد پرسش ها بشیم خود من هم عدد یک رو زدم که پرسش تاشتنم اون به دیگرانی بفرمید این رو ارز بکنم که نشست های هفتهگی جنبش رنسانس، که نشست های همگانی هستش در آدینه ها هر آدینه ساعت بیست به هنگام ایران و ساعت هیجد به هنگام اروپای مرکزی این نشست ها میشه هم یک نونم همزمان این نشست از طریق یوتیوب و فیسبوک به صورت زنده داره پخش میشه دوستان هم اگر فرصتی نکردن نتونستن در نشست حاضر باشن اگر از یوتیوب دارن میبینن این برنامه رو زیر خود یوتیوب اگر پرسشی هم دارن میتونن اونجا بنویسن و ما حتما اونها رو میبینیم چک میکنه و پیشگاه شما میگیم من خودم یک سدمو بده گرامی با پروانه شما این پرسش رو من داشته باشم که بر اساس سروده های تصلی بخش اشو زرتشت بزرگو که اینجا برای ما گفتید خب فلسفه اختیار مشخص شد اما من بینم جایگاه جبر در دینه بهی به چه صورت هستش سپاسگزار میشم اگر اینو خواهش میکنم بله اینم از اون پرسشای کلاسیک است. خب زمانی که ما از آزادی اندیشه سخن میگوییم و یا اختیار حالا بنابراین جبر از یک سو به کنار میره آخه جبر رو وقتی ما میگیم یعنی یه چیزی که مجبوری میشود باید بشود در جمعه های گوناگون میشه بهش نگاه کرد اگر به مفهوم این که از حالا اون که سرنوشت میگویند یا این که همه چیز از پیش روشن شده است یا مشخص شده است اینها نه ما خب چنین دیدگاهی نداریم برای اینکه راستی ها چنین نیستند اما در یک کانتکست در یک چارچوب هایی میشود این رو به گونه دیگری نگاه کرد برای نمونه این که میگوییم بر اس... بر اساس آنچه که ما خب قانونمندی ماده آشامینامین میگوییم هر کنشی واکنشی داره خب این طبیعی است یعنی یک چیزی هستش که یک قانونمندی کلی است که هر کسی میتونه در چارچوب زندگی روزمره خودش خیلی به سادگی به این برسه. شما هر چیزی که بگید در حال واکنش داره هر کنش که بکنید یک نوع واکنش میاره خب این واکنش چیه بیست اگه اینجوری بگم که اون یا اون گفته که میخواد بیرون یا اون کنش که میخواد بیاد بیرون چقدر آزادی داره. این به اون جای مهم اینجاست که ما شاید خیلی همون فکر کنیم که نه من آزادم اون هر چی میخوام میگم هر کار میخوام میکنم ولی اگر بخوایم یه خورده بریم تو در توی روان انسان ها برای خیلی همون چنین نیست. حالا به دلال گوناگون نمیخوام بگم که حالا بعد یا خوب داریم کنده پاپ کنیم در زمینه میخوایم به راستیهاش برسیم خیلی از ماها خب چه آموزش هایی که گرفتیم چه پرورشی که یافتیم چه فرهنگی درش بزرگ شدیم چه اون دلبستگی ها یا وابستگی هایی که داریم حالا به هر گونه جهانبینی اگز شد بذاریم یا خیلی ساده تر آن چیزهایی که پدر و مادر حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم ما آموزگارانمون و و و این ما رو در کجای کار قرار میده که وقت زمانی که امروز من میخوام یک چیزی رو بگویم خب عبود هیچ چیزی که از رو هوا نمیاد بالاخره از چهارچوب اندیشه های من از اون چهارچوب عرضشکوزاری های من, من که میگم یعنی هر کسی دارم میگم من منظور من نیست هر کسی از چارچوب ارزش میاد میاد بیرون موضوع اونجاست که ما تا کجا بسته ایم یعنی میبندیم اون چارچوب پای ذهنمون و تا چند اندازه اونها رو باز میذاریم که اگر جای دیگری راستی خودشون نشون داد بتونیم اون رو هم بپذیریم بیاریم تو سیستممون. باز میگم بسته نشیم دوگ نشیم وقت زمانی که این باز بودن و این اینجا حالا ازفرازادی بذاریم، وجود داشته باشه بنابراین جبر هم جایی نداره ولی هر کنشی واکنش خودش را خواهده بود بنابراین در کنش هامون برای هر گفت، گفته و سخن و کردار دو بار بیندیشیم، سه بار پیش از اینکه چیزی بگوییم و کاری بکنیم که واکنش هایش خوب مناسب نباشد بنابراین جبر یا سرنوشت در معنای آم و آن نه ولی همونجوری گفتم در شکل واکنش به کنش ها آره هست با بسیار از شما مویده گرامی دوست هممیهنی به نام جناب پیتروس در یوتیوب پرسشی داشتن اما قبل از اینکه من بخوام پرسش رو باز بکنم یکی از همیهنهایی که در نشست اصلا به نام هرموز میخواستن از شما پرسشی داشته باشن اما حالا من یک نمیبینم که ایشون زده باشن اما شاید با سیستم آشنایی ندارن از اشونی پرسن گرامی شما سخنی پرسشی داشتید از موبد گرامی میخواستید بپرسید به چه صورت هست بله، اگر اجازه بفرمایید بنده در خدمتتان هستم که پرسشی داشته باشم بفرمید جناب، با درود به شما، جناب موبد گرامی بینهایت خوشحالم که در خدمت درود بیکران، سپاس بیپایان خدمت شما و همه باشندگان در جمع شما به این نقطه خیلی ظریفی امروز اشاره فرمودید در صحبت ها. اول به او یه اشاره یه داشته باشم بعدم یه پرسش فرمودید که رفتار اشائی باعث شادی میشه، منطقی شادی به عنوان اینکه مثلا ما درست مترادف کلمی شادی باشه، نه باعث و رضایت میشه و این یه اشاره خیلی ظریف و بلچسپ و عالی بود نسبت به رفتار اشایی و رفتار درست سپاس, سپاس از این دقت نظر و بر حال باعث خوشحالی بینهایت شده یه سوالی داشتم جناب بود بزرگوار در مورد پارسی سخن گفتن اینجا و اونجا می‌شنویم که باید سعی بشه که پارسی سخن گفته بشه اما واقعا بعد از سالهای بسیار زیاد و اختلاط زبانهای عربی و فارسی و شاید زبانهای دیگه در فارسی باعث شده که به یکباره باره بخویم بذاریم کنار کار بسیار سختی باشه و ظاهرا این کار به هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی نیاز داره حتی افراد بزرگواری بودن که در زمینه ادبیات و سیاست نقطه در تاریخ ایران بودن مثل احمد کسروی تبریزی بزرگ جوان بله خودشان لغات زیادی را آوردن ولی دیدیم که خیلی مستلح نشده و حتی زمانی که مقاییم کتابه رو بخواهیم دوچهارا مشکل میشیم ام. سوال من اینه که جناب مورد بزرگوار ما به جای اینی که به این مسائل بفردازیم که فارسی رو بخواییم با فشار و حتی با تأثیر منفی بر گفتار و نوشتههامان داشته باشه که خوب نتانیم بیان کنیم چون که مخواییم فارسی سره بیان کنیم اینه به وقت به قول معروف هماهنگ عمل کردن بذاریم و تلاش بکنیم در این جهت ولی تا اونجایی که مقدوره واقعا خانه از پای بست ویران است ما نمیشه بریم نقشه ایوان از خیلی اهمیت بدیم حتی موخام اینه که در یک کلمه سلام هنوز او موافقت عمومی صورت نگرفته و انجام نمیشه. در این زمینه خواستم نظر جنوبالیه بدانم به اضافه ای که یه سوال دیگرم یه اشاره فرمودی در مورد باور بارد. که کلمه باور خب ما میگیم اندیشه نیک اما اندیشه نیک با فکر بدم میتونیم بکنیم فکر زشت هم میتونیم بکنیم ولی وقتی میگیم باور نیک باور خلاصه و چکیده اون نهایت او فکره یعنی او چیزی که دیگه ما میپذیریمش و اگری باور نیک باشه بیان نیک میشه و به کار بستنش هم نیک میشه حالا اگر که خیلی هندسی رفتار کنیم و دقیقتر بیان کنیم باید بگیم باور عشایی، بیان عشایی و به بستن عشایی در این مورد صحبت بفرمایید یک دنیا سپاس بانه جانم سپاسگزارم گذارم نخواست که از دیدگاه پارسی سوخن گفتند آنگونه که من می‌بینم شاید این روزها شاید اون فشاری یا اون پافشاری که شاید در سال‌های پیش بود از سوی کسان گوناگون کمتر شده شاید به خاطر همین که شما می‌فرمایید برای که خب مشکل به ایجاد می‌کنه دشواری ایجاد می‌کنه برای سخن گفتن برای خیلی‌ها و شاید اگه دلیل چارچوب قرار بگیرد که کسان دیگه یا این فشار رو احساس بکنن نتونن آنچه که میخوان بیان نه به نظر من این اجباری در این قضیه نیست و اون دیگه به خواست خود آدم برمیگرده که چقدر بخواد بکوشه ببینید اگر, اگر به راستی آدم بخواد این کارو بکنه که به نظر من بسیارم زیباست و خوب هست و این کار نیک و بزرگ فرهنگی هم هست از خودتون بیاغازید به واژه هیچ نیازی نیستش که یک بار آدم بخواد همه چی رو بگه نه اگر روزی، حالا روزی هم نه بگو هفته یه دونه واجب فارسی رو آدم بیاموزه و اون رو دو سخناش به کار ببره هفته بعدش هم دوباره یه دیگه بذاره کنارش بعد از این دست کم چل سالی که ما در این وادی به سر میبریم و بعد از به هر حال به گونه ای چشم بازگردن های فرهنگی و اجتماعی خب میتونه خیلی پیشرفت کرده باشه بنابراین میتونم اینجا هم بخوام بگم به همون اندازه برگردم به همون بالانس برگردم نه اینکه از این پر جوب به قول معروف بیافتیم نه از اون ور نه اینکه آنچنان به خودمون سخت بگیریم و یا آخر فارسی زبان گوییام وانجاری که منم تو این مدت دریافتم میتونه شیوهی گوناگون داشته باشه و روانگویی و ساده گویی خیلی بهتره تا اینکه یه سری واژگان ساخته میشه که راستی به گوش منم نخورده و برای منم خیلی دشواره اونا رو به کار بردن بنابراین من هر که میتونم میگم و می که بیاموزم خب شما هم این کارو بکنید هر که به این فرهنگ علاقه داره و باور داره این کارو بکنه در مورد باور حالا وارد زیاد وارد اون نمیشه ولی میگم باور رو خیلی معایای های میتونه باشه و معمولا باور رو به چیزی میگیم که آ درستیش یا صد درصد بودنش باور نمیدانیم خب من باور دارم که حالا چیزای روزمره من باور دارم که میاد من باور دارم که میشه و یا اینکه مثلا یا ساعت چنده حالا ساعت هم نیست حالا اینا رو شما امروزه با, با این واژگان نمیگیم من فکر می‌کنم در واقع اینجوری من باور می‌کنم یا فکر می‌کنم که ساعت مثلا خلا. برای وقتی وارد مقولات حالا به اسمش رو بذاریم دین بذاریم آیین، بذاریم فرصفه بذاریم جهان بینی اینها ها که میشیم، اونجا یک مفهوم های دیگری میگیره خب برای نمونه میگم من باور میکنم که بهش وجود داره یا من باور دارم که جهنم وجود داره یا من باور دارم که چه بگویم این مقدس است آن آنچنان است. خب این چیزها که میاد تو کار، این باورها که میتونه گوناگون هم باشه و با داریم میبینیم که در طی صده ها و چگونه عمل هم کرده و این روز هم هنوز این داستان به گوناگون برپا است این باورها، باورمند ها رو با هم سر به میم کنه و خب پیامدهایی که دیدیم و میبینیم اینجاست که وقتی ما به اینجا میرسیم باید این باورها رو بذاریم کنار یعنی بریم به دنبال راستی به دنبال حقیقت اون فرق داره حالا در اون راه هم چون باز برمیگرده به چهارچوبه حالا بگوییم اسمش رو چی بذاریم اندیشه ای اندیشه‌ای یا مغزی هم وقتی میگوییم باز حالا اینا سخن در سخن میاد ولی کوتاه بگم دو جور جرف اندیشی میتونیم ما بهش بیاندیشیم یا به گفته گاته ها توشنام مئیتی یعنی <تصفيق> میگوید بهتری شیوه ی اندیشی دیدن اندیشی سکوت است. چیزی که تو گاتا ها آمد. خب حالا شما خودتون خودتون در نظر بگیید دو گونه آدم میتونه در سکوت و آرامش عمل بکنه در چارچوب و اندیشه یکی اینکه که نیاندیشه یکی این که جرف حالا فرق دوتا چیه؟ خیلی ساده، ببینید زمانی که ما در درون این مغزمون، فکرمون همواه و اقسام فکرها میاد میره اینها رو میدونین دیگه شاید شنیدید خوندید از آدم های گنارون اینا در عرفان وجود داره در گذشته وجود داره در مانتراب وجود داره خود زرتشت به نظر من بخش بزرگی این را رفت اینا رو دقیقی مستقیم نمیخونیم ولی توش هست راه دیگهی وجود نداره وقتی میگن که زرتوش ده سال حالا میگه به قار میگه فلان کرد ولی به اندیش خود اندیشه هم باید در سکوت باشه در آرامش باشه اول بعد اون آرامش رو آرامش اندیشه رو اون دریای مواج رجیهای در منفی رو باید آروم کرد در نی اندیشیدن تا سپس وقتی به اون آرامش رسید بعد در مورد یکی یکی نشست و روش در جرفاندیشی رفت و اندیشید اونو بهش میگن جرف اندیشید پس از نی اندیشیدن آغاز میکنیم به ژرف اندیشی می‌رسیم به این دلالی که گفتم درست اندیشی آره سالم اندیشی درست اندیشی راه راست اندیشی تا نتایج راست و درست با خودش می‌بارم آنوارم تونسته باشن در یک کتایی پاس ها بتونیم دارم باشیم سپاس کزارم سپاس بسیار موبد گرامی دوستان اگر پرسشی دارن از موبد میتونن تو قسمت چت عدد یک رو وارد بکنن و پرسششون رو باز بکنن به نوبت گرامی این همیهنم که در یوتیوب پیام گذاشتن خواستن که تعریف دقیق خرد رو شما مهر کنید و بهش بپردازید نگر شما رو خواستن خرد هم عزیزان از اون مرگوله های بسیار جالب است خرد رو اگر به سادگی بخوایم بگیم آنچنان که معنا کردن خرد نیروی گزینش است. خب برای آنکه ما بتونیم نیروی گزینش، گزینش گزینش چی؟ حالا یکی میگه خوب از بعد، یکی میگه راست از نادرست در بین راه های گوناگون که همواره در پیش روی ما هست، گذینه های گوناگون دم به دم، دم به دم بر سر راه ما است. میشه گفتش که شاید هر دم و لحظه اکنون ما اینجا نشستیم کناره هم یه گذینش کردیم دیگه نه برگذیدیم که بیایم اینجا با هم بشتر برابرش میتونشون این گزینش باشه که نباشیم اینجا بریم کار دیگری بکنیم نه. خب وع وع وع یعنی همه اینها است. هست آنچه که خب من رو وادا وادار که یعنی من رو می آرد به این راه که برگزینم و برای نمونه اینجا بشن سخن بگویم با شما آن دانستنی های من کتاب امروز هست و خواست من و انتخاب من گزینش من که امروز بشنم و با شما سخن بگم این بهگوونه نوعی خرد هست. حالا هرچقدر این خرد سیقل دارهتر بشه. هرچقدر دانش پشت خرد افزون‌تر بشه بیگمان ما، از ابزار بهتری برخورداریم برای گزینه در زندگی خب دیگه اگه به به شاهنامه که چقدر از سخن گفته دیگه خود دالید دیگه از باخرد آغاز میکنه و همه جا همه جا از خرت گفته بوده خرد نیروی گزینش است. یک چیز دیگر رو هم اینجا میخوام من بهش بی افضایم خرد در واقع کارش پاس داشته از زندگی و جان است که شاهنامه هم میگوید خرد را سپاس حالا الان قصه یادم نیست اگه کسی میتونه بگه نگاهبان جان از آن را سپاس که از نگوید از حس های ما در واقع به ما آگاهی میرسونن از دنیای پیرامون و به وسیله اونها ما راههایی هایی رو که در واقع جان رو ازش نگاهبانی کنیم زندگانی رو نگاهبان باشیم کار اصلی خیلط نگاهبانی از زندگی و جان است. برای آن که اگر آدم بخواد به در واقع به اون مفهوم ها یا به اون عمق های صحبت حقیقت راستی بود به اونجاها پی ببریم در واقع یکی از پیامدهای اون بخش نیاندیشی که گفتم یعنی این پنج حسی رو که آشش حسی رو که ما داریم برای دریافت زندگانی و فهمیدن دنیای پیرانمون، پیرامونمون در حالت عادی بسیار کوتاه هست بردشون در واقع اینها رو باید به گونه یا بسیار بردشون رو زیاد کنیم یا برای کوتاه مدت بتونیم اونها رو ببندی بشون تا بتونید به دریافت‌های عمیق‌تری از اون حقایق پشت قضیه برسید. در اونجا خرد یه چیز ای میشه. اون خردی میشه که با اون حقیقت در واقع وصل میشه و پیوند میخوره. صحبت از واقعیت و حقیقت میکردم یه خرد داریم با واقعیت پیوند میخوره اینجاست که ما تا رو اضافه میکنیم، اطلاعات میگیریم برای که زندگی اون بهتر کنیم باز میگم وقتی میگم حفظه جان فقط مسئله در نهایت مرگ و زندگی نیست. داره. یعنی مثلا خطر جانی باشه به با اون هم یه بخشیشه ولی به طور کلی پیشبرد خودمون در زندگی زندگی رو بهتر کردن در این جهان مادی که به سر میبریم اون یه نقش خرده یه نقش خرد میاد به اون تووس یا اون حقیقت پشت قضیه مربوط میشه اینکه تمامی جهان چگونه است درون من چگونه کار میکنه جهان درون جهان بیرون اینهایی که به گونهی وقتی من میگویم عرفان البته اشتباه نکنیم چون عرفان هم خودش داستان زیاده داره. شناخت شناخت درست از آنکه زندگی خرد دیگر است ما از آس نخرد و گوش و سرود خرد سخر میگوییم دو خردی که در روسته آمد. آس نه خرد، آ... آس نه یا آس، حالا همون اساس، اصل اس. یا آسمان آسمان نه به معنای اینکه با آسمان ها نگاه کنیم و اون خرد پشت خرد هاست و یک گوش و سرود خرد داریم یعنی اون خردی که می با شنیدن به گوشمون پس دو گونه خرد ما صحبت داریم در گفتگوهای دیگر واسطرش بکنیم سپاس بسیار بانو ارتمیز، بفهمت خواهیش میکنم پرسشون رو باز کنید سپاسگزارم، اولاً که مرداد جان، ازت متشکرم که این شعر رو اینجا برای ما گذاشتی، خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از دا. راه داد به از راه داد، خرد راهنمایی، راه دلگوش راه داد بله فکر نمیکنم خرد را به از، هز... آره شاید، حالا اخیرت دست گیرد به هر دو سرای سپاسگزارم ازت مهندس جان نوشتی و ودود بر شما جناب موبت کامران جمشیدی من یه تعریفی رو دیدم که خب بالاخره همیشه شاهین داره درباره خیرت که تفاوتش رو با عقل نشون میده عقل تفاوت یا تشخیص بین سود و زیان کاری که همه جوامع غرب و شرق انجام میدن اما خردی که ایرانیان دارن اون اغلی است که زیر چتر اخلاق در واقع خیرت تفاوت بین نیک و بده فقط سود و زیان نیست سود و زیان شما میتونید یه کاری که غیر خردمندان است ولی به سودتونه انجام بدید عقلتون میگه مثلا یه مالی رو احتکار کنید و سودی هم ببرید در پایان اما خیرت آدم خردمند این کار رو نمیکنه برای اینکه اخلاق بر عقلش مستولی است این یکی از حریفایی بود که من همیشه شنیدم که شاینم میگفت و به نظر من خیلی حریفش راید به درد در یه از دوستان بخوره که تفاوت خرد رو خوبی با عقل تمایز بدن بفهمن که چه, چه چیزی رو ما بهش میگیم خرد دقیقا اون چتر بزرگ اخلاقیاتی است که روی اندیشه ایرانیان همیشه مستولی بوده و تفاوت بین نیک و بد رو ما داشتیم که بقیه مردم جهان خیلی خیلی دیرتر از ما شاید به این تعریف‌ها رسیدن ولی من پرسشم از شما جناب موبه درباره درباره افرادی است که زرتشتیان نسل اندر نسل هستند حالا من دوستنم بهشون بگم زرتشتی زاده ولی خب کسانی که از دیرباز تاریخ ما با ما زرتشتی باقی موندن و بسیار این تلاششون و زحمتی که کشیدن حالا چه در اون دورانی که کشته شدن و نگه داشتن آین نیاکانی رو چه در دورانی که جزیه پرداخت کردند و نگه داشتن آین نیاکانی رو بسیار بسیار قابل ستایش و ارزشون سپاس سپاسگزاریم که در این عده از زرتشتیان همواره موبدان هم بودن و هر آنچه که ما از گذشته تا به کنون داریم به دست همین موبدان جمع‌آوری شد و به ما امروزه رسید و اون زرتوشتیانی که نستن در نسل از هزاره ها آین نیاکاری رو نگه داشتن هم از ترسی که همواره داشتن از کشته شدن و از بالاخره آزارهایی که میدیدن اموالشون که غارت میشد و هر چیزی سعی کردن یک جو بسته و نگهدارندگی از خودشون نشون بدن. و از همین روی این تا همین اواخر هم به نظر من این جب وجود داشت من چون خودم زرتشتی زاده در واقع نیستم و از 15 سالگی زرتشتی شدم و در ایران زرتشتی شدم اون زمانی که شاید هنوز هیچکس کس نمی زرتشتی بشه در ایران می‌خوام اینو از شما بپرسم به نظر شما چون ما در پارسیان هند بسیار بستگی بیشتری میبینیم، حالا یا به خاطر اینکه بهشون از اول این التیماتوم داده شده بود که شما در هند سکنا کنید و قاینتون رو داشته باشید ولی انتشارش ندید گسترشش ندید یا اینکه برها خودشون چون اقلیتی در یک جامعه بزرگ بودن نظر نشنالیتی ملیت همه چی خودشون خود بستهتر تر داشتن در جامعه ایرانی حالت نبود ولی به هر روی من می بینم کسانی که جزو کس افراد زرتشتی شده هستند خیلی بازتر هستند به پذیرش افراد دیگه که بیان و زرتشتی بشن و به پیوندن به آینه نیاکانی و زرتشتی هایی که از درازای تاریخ آمدن چه در ایرانیا چه در پارسیان یه کمی دارند دارن یه کمی با سختی بیشتری روبرو میشن با زرتشتیهای جدیدتر و به خصوص در این قسمتی که الان ما در کردستان عراق چیزی حدود صد هزار بیشتر از صد،, صد و هزار تا دویست هزار تا میگن زرتشتی دارند و خیلی هم قوی هستن آم، زرتشتی شده مثلا یه در زرتشتیان میگن که نه اینا دقیقا زرتشتیان درست نیستن خب تقصیر هم البته ندارن یا ایزدی هایی که در های عراق هستن یا حتی در سوریه هستن خب اینا مجبور بودن که فرار کنن همیشه برن یه جای ایزوله آموزش و پرورش خوبی نگرفتن بهشون معلومات پایه درستی داده نشده ممکنه زرتشتیان به خوبی زرتوشتی ما نباشن ولی من اعتقاد دارم باید با آغوش باز اینا رو بپذیریم به انجابن زرتشتیان ایران و ایرانیان در هر جای جهان نظر شما چیه جناب موبد آیا ما نباید کمی بازتر باشیم یا حدقل اونهایی که زرتشتیان نیاکانی هستند یه کمی بهتر تلاش کنن که افراد بیشتری به پیوندن به این آین نیاکانی و یا آین, آین نجات ما باقیم از نابود شدن و از به این رفتن در صدا هزار بعد سپاس گذارم خواهش مگو هم دونم سپاس سپاس خب نخوست اینکه که کسی خب منو بشناسه میدونه که به هر روی من جزء آن کسانی هستم که سال هاست به این که شما می هم پاور دارم هم دری رو حرکت کردم. ولی خب اولا همه چی رو باید نسبی نگاه کنیم نگه نه همه چی نسبیه حالا اگر از پارسیان آغاز بکنیم که شما فرمودید، آن هم نسبی است یعنی کسانی که اینا را میشنوند، خب گمان نکنم که همه درتشتیانه که حالا بگویم وقتی میگیم پارسی یعنی حالا یا چندین نسل گذشته یا به تازگی حالا ساکن هند هستند یا در پاکستان هستند پارسیان هم یک گونه نیستند و شاید بتونم بگم دستگر اون بخشی که بیرون هست و نمایانه و در واقع یک خود استوک میذاره این وسط اون بخشش داره خیلی کم جاهای جاهایی کمرنگ میشه ولی بسیاری از پارسیانی که من میشناسم خیلی در این مورد اتفاقاً هی بیشتر و بیشتر و بیشتر دارن گفتگو میکنن بیشتر دارن باز میشن به ویژه در وقتی میبینن که ما در ایران ایرانی در واقع در این مورد چگون داریم فکر می‌کنیم و چگون داریم حمل می‌کنیم اینه که تردید هم وجود داره خب آره چیز عجیبی نیست یعنی اگر بخوایم ما تمام حقیقت‌ها رو واقعیت و کنار هم بذاریم میتونیم اینو درف بکنیم ببینیم من حالا میتونم از اون تو این جامعه‌ای که خودم سالها دارم در این زندگی میکنم برای تون بگیم. در همین کشور، در همین شهری که من هستم، یعنی کشوری که من هستم، سویت خب از سوالیان پیش، شاید نخستین سنگ منای انجام زرتوشتی، سال 1886 بود گذاشتیم و از همون زمان هم با رعی همگانی، برخواه کسانی که بودن یعنی انجام رو آغاز کردیم، هم, هم به قول شما زرتوشتی زاده بودیم و درای انجامن باز گذاشتیم و از همون آغاز هم پذیرش آغاز شد و تا به امروز خب خود این زرتشتیانی که این, این حرکت آغاز کردیم خیلی خوشبین تر بودن در آغاز چرا بد بد بین شدن در شما؟ برای که بخشی از این دوستانی که آمدن بعد یه گونه دیگری خودشون دادند یاد حالا به شیبه های کردند و اون زرتشتیانی که در آغاز با یک با یک انگیزه دیگری با یک خواست دیگری در حال باز گذاشتن بخششون دست کم پشیمان شدند یا پشیمانی که نمیش گفت ولی سر خوردن حالا به گناهی حالا یه بخش کوچکی ده جایی به سر کوچکی من اینجا ولی از این بگذریم خب تو جامعه‌ای که خود شما زندگی می‌کنید تو آمریکا خب از دو ساعت آنجلس آغاز کنیم دیگه خودتون میدید دیگه اونجا که حالا درست اونجا هم از انجمن دوستداران و آقای دکتر جعفری زنده باشه و خب دیگران آغاز شد ولی خب به هر حال داره انجام میشه در درون خود هم انجام میگیره حالا اینکه چه شتابی بگیره چه سرعتی بگیره بستگی به اون افرادی دارن که به هر روی دارن عمل میکنند و ولی چیزی چیزی است که آغاز شده راه افتاده و اینو باید بهش زمان داد و ما آن چقدر دستمون برمیاد میکنیم با کمک هم دیگه میکوشیم اگه از راه زمینی نشده از راه مجازی به هر روی خب ما من یکی کم به نوبه خودم دستانم بازه و آنچه که داریم که مال من نیست مال همگان هست ازوز حت داشتم اینو برای من موقعی فقط نذاشته برای همگان گذاشته. فرهنگ ایران برای هر ایرانیست و برای هر غیر ایرانی که مفهوم این فرهنگ و دریوه از دوستان ما کم نداریم و باکستانی از سعودی و غیره من سخن میگم که به راستی بیشتر از من خیلی چیزها رو میفهمم و. برای به من هم می آموزند. این آغاز شده به نظر من نگرانی نداره. از قدیم گفتند می گفتند گفتن چی دیر و زود سخت و سوز نداره سوخت و سوز ها هم ما می زنیم کنار ولی سپاس از همه شما که هستی، سپاس از همه شما که همراهی می کنید و با هم بخوایم فرهنگ رو دوباره پربارش کنین دوباره بیاریم رو چرا که من میگم جهان به این نیاز داره. فقط مسئله ما ایرانی ها نیست. آلترناتیوهایی که وجود داره آین ما، دین ما از بهترین آلترناتیف بهترین گزینه هاست به که درست بفهمیمش و درست دریابیمش و درست آن را به دیگران نشان بدهیم. بنابراین همازور با هم به پیشتونم. سپاسگزارم. خواهش سپاس از شما، سپاس از مانو آرتمیس سیروس پارسی گرامی، بفهمید خواهش می‌کنم آبای منو داری دارید سیروس‌چان؟ گویانتون بسته‌ست؟ بله بسته‌ست درود،, درود بر جناب موباید گرامی، کاروان جمشیدی، من پرسشم در ارتباط با در واقع دگردیستی آینه زرتشت همونطور که به خودتون میدونید در طول تاریخ آین زرتشت در واقع های فراوانی داشته و خب به در مخصوصاً به ویژه در برابر یعنی تقابلی که داشته با آین های دین های مسیحی و اسلام در برابر این دو دین به ویژه در برابر این دو دین در دوران ساسانی و بعد بعد پس از یورش تازیان در واقع آیین زرتشت به نوعی مجبور برای که بخواد بمونه ماندگار بشه مجبور خودشو در واقع تغییر بده در برابر و در چیزی که تحمیل شد بر ما و خب میبینیم که الان هم خیلی راحت صحبت میشه از در واقع اندیشه زرتشت به عنوان یک دین و در, در تمام دنیا شناخته شده به عنوان یک دین در صورتی که خب اگر بخوایم واقعا برگردیم و بیشتر نگاه کنیم توری که خودتون برها اشاره کردین امروز با دانش, دانش مثلا زبانشناسی شناسی می میتونیم بریم واژه ها رو در واقع واکاویم و ببینیم معنای واقعی در واقع این واژه ها چی بوده و این دگردیستی رو در واقع بتونیم یه پلی بزنیم به گذشته و اون رو در واقع بکشیم بیرون از انتهای اون تاریخ یک ترجمه برگردان جدیدی از جناب موبد نیکنام شده که برای نمونه مثلا اهورامزدا رو خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم و در کل جامعه زرتشتی چه جوری نگاه می‌کنه به این موضوع که بس فکر بسیار مهمه یک اتفاق خیلی جالبیه که افتاده در واقع ایشون اهورا مزدار و خرد هستیمند ترجمه کرد و این در واقع خرد رو اهورا رو از اون حالت کنشگری و فائلی که در واقع به عنوان خدایی که هم تراز خدایان دیگر هست رو در واقع همین نزدیک می‌کنه به اون دستگاه اندیشه ایرانی که اهورا در واقع یک جایگاهی داره در و این ایزدان هم به رسمیت شناخته شدند و باز فراتر از اون انسان هستش که در واقع در کنار این خدا حال اگه خدا بخواییم بگیم یا خرد هستیمند جایگاهش به رسمیت شناخته شده و این خیلی مهمه برای که امروز اگر گفتمان در واقع برتر گفتمان گفت، سخن گفتن کسانی که درباره در آین زرتورش سخن میگوین اندیشمندان هستند و البته خب مردم هم علاقمند هستند که بیشتر بدونند ولی این ترجمه برگردان جدید فکر می کنم که خیلی در واقع نزدیک است به این مفهوم که دیگه نمیتونیم عملا تو این دستگاه در این سیستمی که با این برگردان جدید خیرده هستیمند بگیم که این در واقع آین رو ما بذاریم در کنار دیگر آین های ابراهیمی که یک خدای وجود داره و دو اون بالا هست و, و حکم رانی می سپاسگزارم پس فقط بدونم هم نظرتون هم نظر جامعه زرتشتی در،, در ایران چه نگاهی به این نور رو کرد به آین زرتشت دارد؟ خواهش میکنم بله بله خب البته وقتی ما یک میگیم دگردیسی خب دگردیسی از یک ن... طرف شاید به نظر بیاد که یه دفعه اینجوری شده یعنی سره درجه ای یا اینکه کمی شاید به گفته برخی دوستان که کتابی هم در این مورد نوشته آقای چوکسی سازش و نبرد یا سازش رو رقابت یعنی برخی وقتا سازش کرده، بعضی وقتا به شکلهای گوناگونی به مقابله برخاسته ولی آره خب به خاطر حالا زنده ماندن اگه بخوام بگیم این اتفاقات افتاده حالا اون رو بذاریم کنار من نمیتونم از توی جامعه زرتشتی داشتی سخنی بگم یعنی بخوام تک تک فکر کنم که همه این جامعه هر در مورد مفهوم خدا و مفهوم همور چگونه میاندیشن ولی مانند هر جامعه دیگری اه... کسانی که به عنوان به هر روی شخصیت هایی به شمار میان حالا اندیشمند متفکستش رو بذاریم اه... حالا میتونه یکی موبت باشه مثل هر کسی باشه فرقی نداره میتونه برعکسش هم باشه ولی خب به از کسانی که از سوی کسانی بیان بیرون که به وسیله بخش از جامعه بهشون نگاه میشه خب مسلمان تأثیر بیشتری داره آری خب از اونجا که من خب پومت نگرام رو میشناسم و به هر روی میتونم میگم نه تا رو حالا کلا یعنی پروسه یه یا فرااشده تغییر تحب تحولات که جامعه زرتشتی رخ میده و ما فکر کردید این رو خب من هم دارم دنبال میکنم میبینم که حتی همین که شما میفرمایید بیشتر و بیشتر داره خودشون نشون رو میده و شما فهمونید خرد هستی من من میخوام بهش بیفزایم هستی خردمند یا آن چیزی که اگر بخوایم ما خیلی وقتا از در فارسی یا پارسی یا فارسی می وجود داره همه این مفاهیم واژه‌ها ولی چون ازش استفاده نشده بهره برده نشده و در موردش زیاد گفتگوهای سطح اگر بگذاریم سطح بالای فلسفی انجام نشده آشنا نیست اینا حتی برای خود ما ها که در این زمین ها داریم کار می‌کنیم وقتی که میخوایم یه چیزایی رو حالا از زبان‌های دیگه برگردانیم خیلی دشوار میشه برای نمونه حالا با اینجا زبان انگلیسی رو فقط میخوام به کار ببرم که اونایی که به حال بیشتر می‌شناسن وقتی ما از اینتلیجنس صحبت میکنیم یا اینتلکت صحبت میکنیم بعد این حال چگونه برمیگردونیم به آگاهی به خرد به فکر به اندیشه فکر و اندیشه برای نمونه حد یه واژه‌ای که پارسیک تازی ولی باز حق کنیم چی می‌رسونن یعنی خیلی داستان دنباله دار شد ولی خیلی خوبه خیلی رویکرد خوبی است اینجوری بخوام بگم بذارید ساده بگم کوتاه بگم ما باید از یک خدابازیا دست برداریم خدا رو مفهوم ایرانی خدا رو حتی اون مفهوم آسمانیش اگه بخوایم بگیریم باز بفهمیم خیلی بهتره چی دیگه رویداد شوربختانه از ادیان دیگری که برها دیدگاه دیگری از دیدگاه خداشناسی دارند اونها که زبان فارسی رو به میبرند. می‌برند میان این واجه خدا رو برای خدایان خودشون به قول معروف استفاده میکنند. حالا یکی الله هست یکی یهوه هست یکی پدر آسمانیست یا چی هست فرقی نداره اونها کنون بجای خود برای خودشون نیکو. ولی واژه خدا رو وقتی میان به میبرند، وا خدایی هم که ما میاییم میگیم میدونید چی میگم با اونها از اونها گرفته میشه این معنها در صورتی که ما اصلا همون بلایی که سر واجد دین اومد در بینش، دین اشپوشان اصلا راستش یه چیز دیگه مانتران شد پیام آور بد شد بسیار پیامبر خوب چیزای دیگه بر هر حال میگم آن چیزهایی که یک مفهوم جرف دیدگاهی فلسفی جهان بیدید داشته خب، سازش پیدا کرد به خاطر شکستهایی که خورد و مجبور شد از اونها بگیره یا مجبورش کردن، حالا بخوایم اسمش رو بذاریم ولی خب، این، به قول شما، این دیگر رسی خیلی خوب هست من هم باش همراه هستم من از هست برای نمونه، آن چیزی که من خودم خیلی به با حالا به من محق میگم باز باور دارم یا میبینمش و اون راهی سعی می بگم به جای حتی به جای چیزهایی مثل خدای یگانه یا یکتاشناسی من حتی چون یکتاشناسی باز میگم مگر یکتاشناسی درست ریشه نشه، جایگاه خودش داره یا خدای یگانه با مفهوم زرتشتش. من یگانگی رو ازش نام میبرم. برای من یگانگی یا اون interconnectedness یا تپیوند بودن همه چی با هم برای من خیلی گویا‌تره. و برای من ابورام نماد اون یگانگی است این اینتلیجنسی که این آگاهی بزرگ یا این دانش و این حالا باز این واژه خرد شد اینجا بیاد وقتی بحث ما روی یه قداوند بخره این دانشی که در درون هستی وجود داره وقتی ما اون دانش رو دریابی اون وقت راستی رو دریاب بنابراین این برای به قول معروف بفال نیک می گیره سپاس گذارم سپاس از شما موبد گرامی آخرین پرسش هم دامان گر دامون گرامی دارن اما قبل از اینکه پرسش رو باز بکنن من باز تکرار میکنم برای دوستان که هر هفته آدینه ها نشست های همگانی جنبش رونسانس برگزار میشه با های مختلف، با سخنرانهای مختلف و همزمان از یوتیوب به صورت زنده هم پخش میشه دامون گرامی بفرمید خواهش میکنم آخرین پرسش شما باز کنید بفرمید با درود به سروران گرامی با درود به عوبد بزرگبار من یه پرسشی دارم در رابطه با نمادهای تصویری پرسشم هم خیلی ساده میتونم این اینطور مطرح کنم نمادهای تصویری در آین زرتشتی چی هستش چیا هستش یکی این یعنی آیا ای وجود داره حالا یا به صورت کتاب یا هر چیزی که بشه اون رو در یک جا دید منظورم شمایل‌ها نیست که مثلا نقاشی از آش و زرتوشت باشه از ت... شمایل و اینا بنده منظورم دقیقا نمادهای تصویری فرض بفرمایید در بودایی ها اومدن گل نیلوفر رو قرار دادن یا مثلا مسلمان ها هلال و, و ستاره رو گذاشتن حالا هرچی آیا به صورت یک مجموعه یا یک تحقیقی که گردآوری شده باشه به صورت تقریبا کامل وجود داره سپاس گذارم. این پرسش من آج میکنم راستش پاسخ روشنی الان در این مورد به نظرم نمی‌رسه اگه دوستان بیشتر از من میدونن بیان و بگن که اگر قول شما در یک حالایی دیگه مجموعه مذبورتونه اما آنچه که من خودم همین‌جوری به نظر می‌رسه از این نمات‌ها و سمبلها که بی‌فرمایید خب برای نمونه این که پویستر من هست خب یه تصویر خیالی است دیگه یعنی این هم از روی اون کردکاری‌های بیست‌تون و در واقع یک گونه الهامی می گرفتند و این رو کشیدند خب فر و هر هم که جایگاه خودش رو داره میدانید دیگه فر و هر هم خب این بار باز رو در تخت جمشید و اینا وقتی مشاهده کردن این واژه رو روش گذاشتن و و, و خب آتش یا اون آفریقان آتشدان که اون شاید بار نماد در واقع دین زرتشتی باشه بقیه اگر چیزهایی هستش، نه بقیه یا یا است نمادهای فرهنگی، جشنی، آینی، نمادهای انترانسپندان برای نمونه یا اون تصویرهایی که در این سالهای گذشته از روی اشخاص مختلف کشیده شده، من به غیر از اینها چیزی رو نمیشناسم باز میگم این کسان دیگه هی دیدگاهی دارن بیان بگن برای من همین آتش پسنده است اونم نمادین و در نهایت فروهر و بجوز اتش در قلب ما وذهن ما هست حالا این تصویرم گذاشتم فقط برای که به خوبی پرکننده این برنامه باشه ولی هر شکلی که ایشون داشتن حالا این مو بلند بوده ریش بوده نبوده خب طبیعیست برای اون محا البته دباس این گونه بوده نبوده این ها و ما آنچه که از ایشون برای ما به یادگار مونده آموزش سخنانش، منطره هاش رو در نظر میگیریم عزیزم من بیشتر از این واقعا نمیدونم اگر چیزی میدونستم بعد به دوستان میگم که در برنامه دیگه مطرح. سپاس سپاس بسیار موبد گرامی از اینکه محق گذاشتی، تشریف ها و ما واقعا سود باید، سپاسگزارم یه لحظه پروانه بدید، یک نوشته ای هست اشکال نداره، بگید بله، اینجا بانو آرتمیس نوشتن در رابطه با نمادهای ایرانی حتما یک سخنرانی در همین نشست های خواهیم گذاشت و جستالش رو حتما به آگاهی دوستان خواهیم رساند خیلی حکم، ما هم میشنیم کشم سپاس از شما سپاس از تمام دوستانی که در نشست بودن و مشارکت کردند. اگر سخن آخری است مو به شنونده هستیم اگر نه که با پروانی شما و پروانی دوستان نشست رو دیگه به اطمان برسونیم سخن آخر نخواست سپاسگذاری از شما و همچنین همه باشندگان باهاشندگان که به حال با بودنشون هم انگیزه رو به ماها میدن که بیایم بشنیم دور هم دیگه و هم اینکه از دانش هم دیگه بهره ببریم. حالا اینجا من سخن گفتم باره دیگر کسی دیگر میگوید. من میشنوم و اینو رو میگیم همپرسی نه همه پرسی. همپرسی ما با هم میپرسیم با هم راستی ها رو میجوییم و در نخواهت اگر دیدگاه و هدفمون همون رسیدن به راستی ها باشه همه با هم همراه میشیم همه با هم همراستا میشیم هماهنگ میشیم و یک سری قانونمندی ها رو اگر همیشه بیادمون باشه احترام بش بذاریم عرضش همدیگره بدانیم ارزش خودمون رو بدانیم ازش همدیگره بدونیم چارچوب هامون رو بشرسیم در چارچوب های خودمون و اندازه های خودمون بمونیم برای بزرگ کردن اندازه هامون باید دانشمون افوده بشه و داستانی ها اون افودده بشه در کنار پذیرش دیگران و امیدواریم که بتونیم باز هم در یک شرط خوب در هم بشینیم مثل امشب و از همدیه از هم یه بله ببریم سپاس از شما شب هم تو خوش روز شب خوش و حالا دیگه. به یزدان می او هستی و او هستی خیلیت و خیلیت هستی من می سپارم اتون شادو تم درست باشه سپاس گذارم سپاس از همگی روز خوش سپاس از روما پاینده ایران پاینده ایران بدرود